الحمد لله سید و رسول الله و آله القیبین قاهرین المعصومین و لعفت دایمت و علا دایمش من اللهم فعنا جمیع المشتولین و حمد رحمتی دیروز در بحثای تشکیز موضوع که متعرض شدیم کلام ابن الاعرابی رو متعرض شدیم که ایشون غابه رو به معنای اختابه گرفیدم که استاد فرموندن الا انهو اجنبيان ان المقام فانه انهو غیر الاخیاب چون اشنا عبارت کامل نقل نفرمودوده در عبارت کامل نسخه همه فرمود راجع به اما حالا این یک قسمت کار راجع به این عبارت ابن العربی یا اون عبارت دیگری که نقل کردیم از مثل کتاب اتراز مرمون صدی خانمدنی یه توضیحی هم بعد از می‌کاره این صورت سال انسانی ایشون بخونه از صورت انسانی به تریبیوسات ният کره انسان به شین صفات العادیل متعارفه اللاتی لا تسف بالملح او الذم ولا ريب فی عدم اندراج هذه السوره اذا تحت الغیبه غیبه عن الامور العادیه نیست من ما ستره الله علی المحولفی ایشون تعبیر همون من ما ستره الله رو گرفتند اصغر اون مما ستره الله تو اون روایت بیشتر ناظر به امور تکینی خود انسانه یه حالاتی ما سیاه ندارم. ما از سوی اقسام بدن سیاه تکینی اقسام بدن مو زیاد داره یا درست هم اینطوری چیزی هست که مربوطونه و ذکر و حالای وجوب نقص او افسزاره سواء آن اکان کارهن له به لحاظ نقص نه اما اگر نقص باشه چرا اما اگر نقصم نباشه متعارف باشه برطرفه انصافا اگر کاره باشه مشکله اگر کاره باشه به لحاظ قرفی مشکلیت نداره معلوم نیست به لحاظ قرفی صدقی قیبت چون داریم یه آشواش این نتیجه میدستیم که ما یه قیبت مفهوم و قرفی و لغبی داریم و یک قیبت معنای اصطلاح شرعی داریم همون تعریفی رو که دیروز اشون هم نعبی کردن اون است که خلف انسان المستور به سوء این رو عرفی گرفتی او به ما یغم مهول و سمعه این رو شرعی گرفتی اگر یک مدلی که زشته گفتی این خودش عرفن غیبته اما نه ناراحت میشه حالا فرسون عرفی هم باشه یعنی نقصی هم میزرد انسان فرسون ایشون فرسون توی جورابی که پوشیده تو جورابش 6 شیش رو انگوش داره متولد کموش شده به جای پنج رو انگوش شیش چیزی نیست که orphan تکی که از مادر که به دنیا آوازه این طور بوده درسته این مطلب orphan نقص نیست اما به ما یقومهولو سمعه به ما یکرهولو سمعه با وجود این خیلی مشکله البته مرحوم استاد چرا اینجا ایشون اشکال میکنن سبش این نیست که مثلا به اطلاح به ما یکرهولو سمعه اشکال دارن ظاهرن ظاهر مجموع عباراتیشون ظاهرا اشکال مرموم استاد این است که غیبت به یک معنای شرعی ثابت نشده ایشون همه رو به همون معنا و عرفی برمیگردونه چرا؟ چون ایشون محترد این روای از ذکر رو که اخاک ما یک رو لو سمعه این اصولا سنده ثابت نیست چون سهت اسناد نداره نمیشه روی این اصاب بکنیم ولیکن ارز کردیم این رواید خیلی مشهوره هم در کتب اهل سنت و هم چیه. و هم در فتاوا اگر بنابشه جای شهرت جابر باشه یکیش همینه، اگر بنابشه شهرت جابر زعف اسمت باشه یکی شمینه و جیشون تون جابریت هم قبول ندارن پس بنابراین این صورت ثانیه روی مبنای خودشون از صورت ثالثه این یکی از پره انسان هم به اصاف زمینه و افعال قبیه الموجود فیه ارز کردیم افعال قبیه روی میخواد قد الله خود سطر اصره الله مشایخ میخوره به صفات واقعه تکبینی و موضوع غیبت همین صورت و ما ذکرناه من صور مذکوره یشمل مال و نکو عن المقبول فی بعض الاوصاف یعنی فرقی میکنه کنه غیبت چه در اسباب چه در نحفی اگر یک صفت کمالی رو هم ازش نفس کرد نفی کرد دارای این صفت نیست و این با به نظر عرفی سوء باشه مثلا فرض کنید متصدی افتای این هاستی یا این مشهد نیست خب این نظر و عرفی بیه معنیش اینه که خب این یا واقعا میدونه و تعب تعب تعب تعرض داره که خب انواع مشکل داره یا اصلا نمیدونم که خب خبت عقل داره الان که ماکان پس مرمون استاد قدم متعقن از غیبت رو این میگیره هم بعده. این صورت سبلان که که ما اسمش رو گذاشیم تا اینجا، حالا تا اینجا که ما رسیدیم، اسم رو خوشیم قیدت عرفی اینکه سوء باشه و در عموم موجود باشه این قیدت عرفی است. سوء نباشه یا مرد باشه به تعبیری ایشان قیدت عرفی نیست و اگر سوء باشه و در شر باشه هم که بختان است و کس بست و سوء افترا. این تا اینجا این تقسیم بندی ایشون. اما مسئله بخش لغوی که تا اینجا آمد البسه مرحوم استاد اصطلاحات کلمات لغوی ها رو پشت سر نهادن منم نيوردم الان به همین مقداری که ایشون رو بودن فعلا اکتفا کردید اما بعید یعنی اون نکته ای رو که ما اینجا الان میخیم بگیم یک اینه که آیا این مطلب ثابته که غابه و غابهو رو عرب به معنای قیبت کردن به کار برده عرض کردم این در کتاب مرحوم تراز هم آمده مرمون سعنی خان آمده در این کتاب از ابن عرابی هم نعرابی کرده مرمونتو گفتن این نوادر ابن عرابی چاپ شده این مطلب اونجا نیامده این مرمونتو نقل شفاهی از ایشانه اصولا برخورد ما با اینجور نقل ها اینجوریه برکرد به طول کلی یک آیا این نقل ثابته ثابت نیست ابن عرابی مطلب رو گفته نگفته ابن از عرب ر مثلا بادیه شیده سحران میشین ها شیده عرب خالص شیده آیا نعرابی خودش سقرد در نقردش قبول بکنیم یا خودش هم محل اشکال در یه بحثای اینجوری یه راهی هست اینجوری هستیم راه دوم راهی از که ما بیشتر و او نظر داریم این اولی هم درسته نهی که این هم خوب راه خوبی نهی که دار و اونی که حالا ما برای این که این صحبت خانشی با عنوان یک اصل موضوعی با عنوان یک مثلا پیشتر قبول میکنیم بکنی خوب ابن عربی سر این نورم ترشون درست شو از یک عرب شنید. اما این که به وجرد که ابن عربی شنگه باشه حالا ظاهر کلام اینه که ابن عربی بسیقه به تعبیر ظاهرش، شد چون خواب ازدختاب ازدختابی که متعدیه اگر که ایشون چینده باشه حالا یا به صورت متعدی یا به صورت لازم و ظاهر عبارت مرحومه سرالی خانه مندنی یعنی به صورت متعدی هو مثل آب برای اهمه اما غیب درجه است که پشت سرشون و هر حال مرحوم سرالی خان که متعدی نرابه کرده در کتاب اینی که از نعرابی نرابه شده به صورت لازم احتمالاً یقینی نیست احتمالاً به ساته لازم باشه انصاف قضیه با فرض تمام مقدمات اثبات لغت به این مقدار خیلی مشکله چون ارسکر نیمه مشکلی که ما در لغت عرب داریم اصولا تدوین زبان عربی بعد از آمدن قرآن و روایات رسول الله و بعد از مثلا تشکیل تواف مسلمین شد یعنی مشکلی که پیدا شد این بود و توضیحاتشش هم باره ارز کردیم و غالبا برای ضبط لغت عرب و نوشترش امثال کسایی یا سیبه یا دیگران به بادیه به اصطلاح میرفتن خرش رو بادیه حالا با عرب برخورد میکنن اینا رو زبط میکنن به ذهن ما میاد چون دنیای عربی یک دنیا عریضی بوده الان هم هست الان که عریض از اون زمانه پس مثلا عرب ما بین کوفه و بخشه یه چیزی بود خیلی اصلشون یمنی بود عرب مدینه یک جور بود عرب مکه یک جور بود عرب یمن که دورتر بود پیور دیگری بود مشکل اینه که بعد یک مقداری از این کلمات در حقیقت وقتی نقل شد بر اثر نقل انتقالی که پیش آمد و نقل از کتاب به کتاب بعضی از چیزها که به عنوان مثلا فرض فیما بعد ما اسمش لهجه گذاشتیم مثلا بنی تمیم اصلا این تکرار ان نمیگفتن ان نمیگفتن الانم تو عرب عراق هم ده از عربا ان نمی گفته حالات اشواء عین میشه دارن در بابه مثلا اشل و ان مثلا لا لا انم محمد اش اگه انی به کار می‌بوردن خب این یواش اش این لهجه برداشته شد اخیران توضیح دیدیم طبیعت لغت این طوریه و همچنین فرسی اینا فرسیم که بعضی از عرب کلمه غابه و یا غابه او رو به کار برده باشن فرسیم اما این شواهد ما الان که الان در لغت ماست و شواهد ما در لغت قدیم در مواد استعمال چین چیزی رو تایید نمیکنه ما در روایات چین چی معنی رو از غابه نداریم حالا اگه ممکنه بعضی از اشاعر بودن افراد بودن فرق بوده علا ما با فرض اینکه ابن عربی درست گفته و کسی هم که از ابن عربی نروی کرده اونم درست ابن عربی اون درست نروی کرده اون نقلی که چون در عبارتی که اگر بیاتون باشه دیروز که خوندم اینطور بود عبارتی که دیروز بعد از بله لسان العرب بعد از قبل از این که کلام ابن عربی بیاره بر اینطور طور که و روی عن بعضهم ان له سمع قابهو یغی او ادابه خب حالا ما اینا رو قبول بکنیم این روبیهن به صیغه مجهول قبول بکنیم بعضی هم, هم قبول بکنیم تمام اینا رو قبول بکنیم اثبات لغت این نمیشه کرد این کافی نیست برای اثبات لغت اصالتا معیار در لغت چیزی است که امر وضعی و اعتباری است که تفهیم و تفهم من وقتی بگم شما بفهمید شما و من وقتی شما میگید میفهمم مرادتون چیه می خودت فکر میکنید یعنی من مراد خودم رو دقیق نخت به شما میرسونم و وقتی هم شما صحبت میکنید مراد شما رو میفهمم میگم مرادی ایشان اینه اگر تفقیم و متفاهم نباشه لغت نمیشه مثلا قوام لغت به تفاهم مجرد مجردی که سمع بعضهم یعود یا یک عشیره ای در یک عشیره ای رفته بود در یک قبی ای در یک دهی بود این استعمار شده این کافی نیست. مادام ما در روایات نداریم. در روات رسول الله در بقیه مثلا مثلا بگه قبطه. مثلا اونجا اختفتی ها در اون روایات داره که حضرت پیرانبر با عاشق امن اختفتی ها. ما در این روایاتی که الان موجود داریم این کلمه قابل چه متعبیهن. چه لازمهن. بی این معنی به کار برده نشده. مزادم که جای دیگه هم ندیدیم. نه این در ما مضافیم میگه که الان هم انسان عربی چی معنا رو نمی فهمه. لذا ثبوت این معنا الان برای ما بسیار مشکله. الان تقدیر این که اینا درست باشه. همه این نقلا درست باشه. تمام این نقلا درست باشه. باز هم ثبوت این معنا مثلا فرسین همین شعر معروف ایوه از و انهم و انیل از سومنی خب گفتن این رو فرسین اوبردن شاعر مشهور احتمالاً جعلی باشه یعنی این مقدار هم ثابت نباشه که عرب حتی در شعر به جای منی منی گفته باشه شعر خودش مجهوله اصلا حدود هزار پنجاب به شعر در کتاب در کتاب سیبویه هست پنجاب بهش قائل نداره هزار تاشو گفته پنجاب احتمالاً جعلی باشه روشن نباشه حالا برپنز هم جعلی نباشه ایوها سائلانهم و عنی اگر دیدیم ما در شعر به کار برده نشده فقط یک شعر واحد مفعول القائل با این نمیتونیم اثبات بکنیم صحت این استعاره و برام شعر قدرت بکنیم و لو فشرنه استعاره یک مورد واحد کافی نیست پس بنابراین این نقل که غابه لازمان یا غابه متعدیا معنای خطاب باشه این معادلعلاقا انساناً ثابت نیست. نه اگر ثابت نشود نکته بعدی اینه که به احتمال بسیار بسیار زیاد این معنای غیبت این معنای غیبت رو دقت کنیم که انسان کلامی رو پشت سر کسی بگه این از هیئت اعلی در آمده نه از ماده خوابه این کُل یک بحثی است که ما چون عرض کردیم در لوات عرب به خلاف انگلیسی یا فارسی که معانی مختلف رو با پسند و پیشرند های مختلف اراز می کنه مثلا میگه گل، گلستان، گلزار، گلکار هی پسرندار رو عوض کنه مثلا گل زار. زار اضافه میکنه گل کار مثلا گل مکان، گلستان هی به اضافه با اضافه کردن بعضی از خصوصیات معانی جدید رو داره در لغت عربی این رو با حیعات انجام میده با پسند و پیشفر نه این رو با حیات انجام میده توضیحش هم صابقه هست کن بعضی لغات هم مثل بعضی لغات چینیه چون چین چند تا لغت داره بعضی بر. لغات چینی ممکن است حتی ماده و حیعت هم عوض کنه مثلا ورده رو یک ماده وقت بخواست بگه زاره که فائل همون باشه اصلا ممکن بگه آکل مثلا مثلا ماده یعنی معانی مختلف رو با الفاظ مختلف به لحاظ رعایت و معنا میاره. ما دو هیات میاره. اینو ما یک توضیحات صابرن عرض کردیم ifadeی معانی مختلف از یک ماده واحد در لغات فرق میکنه کیفیت افاده شناخت لغاتی که از مهم مسائل مهم در لغات اینه. در لغت عربی با هیئات گاهی میشه هیئات اصلا معنا رو آغاز می‌کنه. مثلا فرضش این, این لفظی که معنای حدسی تو توش نیست. اگر خوش نباشه خب اشتباه نمیشه. اشتباهی که به حدث ذریه فعل ازش درس نمیشه. این یعنی من به یک هیئت دیگه ازش فعل درس می‌کنه. فرض مثلا لفظ عراق که به یک مکان معین. خب این عراق مکان معینی است؟ قابل تصریف نیست و علاوه یعنی بر تصریف داره و تطرف. این تصریف حدسی درش نداره. مثلا اگر بخوام تصدیق هرسی خواهر باب افعال اعرق زیدون ای دخل فلی ارام انجد زیدون دخل فی این اعرق و انجده چون اون ماده اصلش قابل اشتغاق حدثی نبوده این رو به باب افعال میبرن تا ازش اشتغاق حدثی رو نمیگن اعرق زیدون ای دخل این دخل فلی این یک نقطه که خیلی مهمه و یکی از مسائلیست که منشع شده خیلی از جهار بعضی از اقلات نحوی عدوی راه پیدا بکنه مثلا فرصوی لفظ محن اون پولیس که شوهر به زد بینده در باب ازدارش اسمش محنوی خب اده خیالی تنه که این که اون پولیس محنوی ده این مثل ایرام این قابل اشتراک نیست نظر اگر میخواستن حدثی ازش اشتراک بکنن اشتراک حدثی میگوستن امهر طول الان در کتب فقیه هم زیاده ولو امهره ها بکنه حتی تو بعضیشات روحات ما هم باشه امهره با اینکه در کتب لغت خود علماء لغت تصریح کردن این غلطه سهیش مهره ها مهر طول مره یعنی با اینکه که این بیمعناست معذاله قابل اشتغاق حدثی هست و بردنش با افعال درست نیست مثلا تصریح کردن این که غلطه سهیش مهر طول مره هست نه حالا منشون نیم خواهد بارد بشم یک مقدار اجمال کار در ذهنتون بیاد در از اینه که خوب دقت رو کنی. ما الفازی داریم که حتی شاید مثلا ممکن باشه از اون معنای مثلا سفر سفر به معنای بعد انسان از مقرد زندگیش این اصطلاحاً سفر خب همین سفر رو تب... گفته شده که بعضی از عرب کار بوده سفر از زید یعنی به سفر برد لیکن اون چه که الان هست در روایات آیات در شعر عربی برای اثبات معنی اشتراح و حدسیش بردنش با مفاعله ساپر زیدون یعنی ده هر در سفر خوب دقیق یعنی خود این سفر با اینکه که معنی سلاحیت اشتراح داره یعنی سلاحیت اشتراح حدسی داره صلاحیت داره بگیم مثلا مرد به سفر بر لیکن گفتن استعمال نشده بعضی گفتن دوغوی ها که نادرن دیده شد این مثلا یه قابه شران داره میگه لیکن الان وقتی منخل این معنا را ازش در بیاریم میبارش با مفاعله لذا خوب دقت مکنیم در مثل سافر زیزون میکنیم مفاعله ما این طرف این مال این دو طرف یکی به یکی بزنو در دیگری جواب بده این تو سافره نمیاد چون سافره اصلا مال این ماده نیست یعنی سافره برای این اساسه که ما از هیئت استفاده کردیم برای این که معنای جدیدی رو در بیاریم مثلا سافره ای طلب بسه به سفر زهر به سافر و گاهی اوقات هم ظریف این بحث چون بعض آن گفتنی که نکاسه مثلا بیدین ما در لوقت عرق زره داریم زر به معنای ناراحتی بدی لا یغر رو کن منبول ادهتله شم استعمال شده یغر رو محصر زر یا زره زر رو ذره. این به معنای نراحکتون نکنه لا یسو رو اما ما زرر هم داریم این دو سو با همگه اشتباه نشه زرر و زر زرر اولیت از نفسه نقشی که در یک چیز پیدا میشه بهش میگن ذره. اگر بخوام معنای اشتقاقی ممکنه، لکن انصافا معنای اشتقاقی حدسی رو از خود ماده ذره که سلاسی مجرده انجام ندادن. از این ماده داریم اشتقاق داریم مثل لا یغروک منزه. لا یغروک یعنی شما رو ناراحت نکنه، لا یسوک اما اگر شما همین مادر رو مخواییم به زرر نظر نه زرر به زرر اشتراق زرری بکنیم اینه میبریم تو باب افعال اذر رو بیهیم یعنی الحق به زرر تو باب افعال بیشتر از قرن بعد از زمان رسول الله این زمان مامو صادق ایناست اما در زمان رسول الله در مکه و مدینه می‌بودن تو باب مفاعله و تزار به تو تزار باب مفاعله میبارد زار رهو الان عرب این هیئت رو بکار نمیبره مثلا بگه زارر تو زیدم زار رهو یا زار رو المسلمی الان عرب ها نمیفهمه الان یو زر رو المسلمی رو میفهمه حیعت باب افعال رو میفهمه نه باب مفاعله پس این نکته رو خوب دقیقت رو خواهی این نکته قابل توجه و قابل دقت. دمان این که وقتی ما دیدیم در فعل ثلاثی مجرد در فعل اصلیش این معنا نیست، این اصطلاحی که من به کار برد این معنا از هیئت درآمده. پس این معنا که اقتیاب رعایت به این معنا که انسان ذکر شخصی که و انجام بده. آیا این تو ماده قابه هست یا تو هیئت باب استئصال درآمده؟ بسی کلام مثال رو اگر کلام ادنال اعرابی، و ما رویان و ازهیم کلام مرحوم و خان، درست باشه تو مادش؟ شد نوشه قابه اداده کرده انسان به خیر اون اوشن لیکن انصافه هم ثابت نشد و زواهر نشون میده که این از ماده باب افتعال از هیئت افتعال دارم از ماده نیست حیعت افتعال در اینجا این اختزار کرده که حالا اگر آن خواستن چون در کتب صرف آدتن چه صرف های قدیم مثل همون شافیه اینها باشه و شافیه و چه صرف های جدید اصولا سعی کردن معانی مختلف حیات رو بگیمیستن باب افعال باب تفعیل باب مفاعله باب افتعال انفعال. ب... پس بنا بر این باید دنبال این بیافتیم که در تا اینجا از این اول بحثی که مرحوم استاد اینجا فرمودن روش بحث رو بیشتر نتیجه گرفتیم به ذهن ما میاد این مطلب که ذکر الغیر پشت سر او این در ماده غیبت نیست قابل نیست این تو هیئت افتعال احتذا کرد هیئت مثلا الان ایده از فقهای ما هم قائله مثلا تاهر به معنا اون که خی... پاک اما تحور که مبالغه خود تاهره این هیئت که میاد معنا رو اضافه میکنه هیئت حیعت معنا مادر نباید عوض بکنه آدتاً اینطوره طور آدتاً حیعت. مثلا مثلاً اگر مبالغه تاهر باشه تاهر پاک تحور خیلی خیلی پاک اینجوری میشه اما گفتن نه تهور یعنی افتان رو فی نفسه رو این المتحر رو لغیره اضافه است عادتن هیئت معنا اضافه به عادتن میخواه ارجو کنه اگر گفتیم ثابت انزل نامنا از سما ما ان طهورا به این معنا که آب خیلی خیلی پاک آبی که از آسمان میاد فوق غلاده پاک یک چیز خوبی تو است اما میگم آبی که از آسمان میاد هم پاکه هم دیگری رو پاک میکنه هم اشیاء نجس رو پاک میکنه متطهران هست. این معناش اینه که اثر با مبالغه در ماده تأثیر بگذاره. اگر مبالغه باشه چون اکنال تحویل مبالغه نباشه اون بحث دیگریست نمیخوام فیلم اون بحث باشه اگر تحویل مبالغه باشه فعول در اینجا مبالغه باشه این مبالغه ای که در اینجا هست در معنا اثر میکنه یا نه محل بحثیست در کتاب نه در اینجا به ذهن ما میاد این که این مثل احرقه است. حالا مثلا در زبان فارسی ما نداریم با پسند و پیشرند مثلا بگیم اراق رفتم ما این طور دیم. دیم شعر فارسی از شکر لله که ما مکیدیم طربت پاک پیانبر بیدیم این ظاهرم به تن و زوچوک اشوه هسته ما مکیدیم رو کار نمیبریم متعارف ما نیست مثلا متعارفه این کلمه ما نیست که ما مثلا یک جایی رو که مهم بریم با این ترکیبی که ل ایننا رو به اسم شدوزه روز در لا ترکیبینا به کار بردن میگم اما در حقیقت من احتمال اونشاید شوخی مغا بکنه الغات شکی اللا صبین ما در فارسی پسند و پیشوندی به این معمنو نداریم اما در عربی داریم. عرق ض داخل ایداخلهله. اما در فارسی نداریم. لذا این نکات در ترجمه هم کاملا دقت بکنیم. این خصوصیت در یک زبان هست یه خصوصیت در یک زبان نیست مثلا ما در زبان فارسی نداریم که از یک پسند یا پیشوندی رو فعل هدسی رو اشتقاق هدسی رو از اراده درست کنیم یا از مکلان میشه که ایشون گفته کنیم اما این ما در لغت عربی داریم در لغت عربی اعور زیدون ای دخلت ال اینو تو لغت عربی داریم تو لغت فارسی نداریم تا اینجا به ذهن ما این میاد این ذکر انسان خلفه او این تو ماده غیبت نیست تو ماده غاب نیست تو هیئت باب افتاده این معنی توی غاب فقط استخواره غاب رو شد مخفی شد تو غاب فقط همین اما کلامی رو خود داری چیز جدیدی دیگه در ماده اضافه میکنه کلامی رو من در غیبت شخصی بگم این تو ماده نیست مگر این نقل ابن العربی یا اون رو بیان بعضی هم درست باشه که متاسفانه یا اینا ثابت نیستن چون گفتن این نقل هم ثابت نیستن یا اگر هم ثابت باشن اثبات لغبیت باشه میشه چون تلقیه به قبول نشده عرب هم تلقیه نکرده و قول خودشون دون اول فسیم داره و اما تو مازی از یدعا این اما تو یعنی برپرزی هم اگر بوده چیزی نبوده که در بین عرم جا بیوخته و به کار ببرند استعمال بود این راجه تا اینجا از کلمات استاد چون استاد یک تنبیهاتی رو هم فرمودن که اینها هم در تحقق موضوع قیبت معسره ما این تنبیهات رو هم ارزم کنیم بعد اون نتیجه نهایی رو توفرد الان روش کار اجمالا روشن شد بریم روی بقیه خصوصیات و قیودی که در مطلبی ای که ایشون در اینجا دارن با عنوان تنبیهات تنبیه, ها تنبیه ها اول در باب غیبت اگر چیز نقص باشه فرقی میکنه در دینش باشه بدنش باشه نسبش باشه اخلاقش باشه فعلش باشه قولش باشه آخری و راست هم هست اضافه این مطلب ایشون درسته هر چی که موجب سوء باشه و ای نحو کار بعد ایشون دوستان الا اینکه در روایت داوود بن سرحان المتقدم فلهاجیه که ذکر شده ان فی کل انسان به ما یکون و نقصن فی دینی فقط انتونه نقصن فی دینی فقط نداره تعبیر اینه انرقیبه قاله مالم یفعن و توس به تو علیه هر قد الله علیه لم یغم علیه فیه حدون او چیز سطره الله علیه به فیلم خورده غیر از اون روایه. لم یغم علیه فیه حدون ظاهرا. من فکر میکنم کلمه لمیغم علیه فی حمدون این اشاره باشه برای به اصطلاح سطره الله و تفسیر باشه ایزا لازمه دین یعنی این حدیث مبارک ناظر است یک عبری که به دینه اینکه اختصاص داره فکر نمیکنم و فی اولا برن روای زعیفت سنر اصلا راست ابن سیابه المتقدمه پر بحث هن نقل سر راه دارن نقل غیب قول که فی آخر ماست تر بله لاله. ابن اون راست نسیابه هم مشکلشونه که اون متن ثابت نیست که مادام باشه و تبع هم هم در مطلب مراجع خونه این راست خصوص سر دین آورده نه فقط دین نیست. نکتهش آره این که خود دین نیست. نکتهش این اینه که مخاطب بیان امر مستور و ظاهره بکنه. ولی خوب بود حضرت استاد این رو بحث میکردن مثلا میگه امر ظاهر اونجوریست که اقیمه علیه هر. اگر لم یقم علیه الحد این مسئوله بکن انصافا این صدق هم مشکله این صدق این مطلب روشن نیست که اینشالله در دهست یعنی در اون نتیجه نهایی حصیبه و قدیت و هم اعتبار قصد الانتقاس <تص> اگه تنبیه دوم قرار ندادن بحث معروف است و روشنی آیا غیبت از مفاهیم قصدی یا نه از مبورد... یعنی از عناوین قصدی است مثلا غیبت در جایی است که شما مثلا بگیم فلانی یک صفت بدی رو بهش من قصد بدی نداشتم آیا قصد میخواد یا نه که اگر قصد نبود دیگه غیبت شد آیا این خوردن فرض عناوین قصدی هست. اصلا هست مطلب همین طور عنوان قصدی نیست بلکه نمو توهم فاصل لا دیره علی فاین سر عنوان ایب علی المعقول امر و عرفی یعنی اشواهد در روایت که درش قصر معتبره شما ایب یک و رو خود بگی این هیبت بگید من قصر داشتم تو راضی از می‌کنم من قصر من خودش نداشت وقتی که آقای به اسم افراد اینرا بگید در نظر فرض که از مراجعه به گویا من قلبم شما اما لسانم با یک آدیه است آم قلبم باشم. اشان شوی که گال به آس کنم لسانم با من باز قلبم با یک آدیه. من قلب تو بخاطر با شما شد. آسانی ان نذیر آدم به لواصاف ال آدیه و نفیا آن این نمای لایحونو غیبت ندارن یا از تلزیم نخسند فلج و ایلا فلا شو بسیفی کمی غیبتن. نفی هم همی... مثل نفیل اداله هم مثلا برای فلانیا آدر نیست. خب راسته نمی‌گی باشه؟ فناوی اداله ملزمه برای کابل مااسی. اما مثل ملزمه کلیشون تنهام اون اولی وجود ملا اینیه که ملزمه شرکت کنیم. آدر نیست این مااسی رو مترکیم. دسیا خو؟ یا مثلا باوری اینه ان یا غرب علم نه. حالا علم نه و من می‌گیم این آقا مثلا پنجاه سال دارس در خود باوری کسی 50 سال من مشکل داره من از این یوزرنشی که داره. از سالس ان مقتضا ما زکرناه من التعریف برای المتعبن مفهوم الغیب امورد روایات ان یکون المقول امرن قد ستره الله على مقوله تعبیر ستره الله از کم شده تو داخدون سرهان در فعل و کار روشه اما ستره الله تو امور تکمینی میگه و اما ذکر امور زاهره فلیسه من الغیبه و قد حال اصحاب فی مستثنیات الغیبه و ذکر او مثل الله الازاره روات ابن سیابه که روات ابن سیابه یا سیابه این نازره به مسئله امور تکلیمیست نازره به فعل نیست و روایت از رب هر دوشه میشه قبول کرد حالا بعدا میشه به عرض میکن نه امفی احیاء العلوم انعائشه البته درست این مطلب تو احیاء العلوم آمده اما احز کردم این مطلب در روایات عامه هست ما از کتاب سیوتی خوندیم در المنصور اصلا نیشم اونجا ناری یعنی به اصلا مسادرشم نشد دخلت علی نا امرعتون فلن ما غلط اومعتو به یدی همین روایت بشون اس نورده چون روایت مختلف نهارد شده آیشه این مطلب رو میگه و مرادش همون صفیه است که معلوم میشه مثلا قد کوتاهی داشت فقال رسول الله اقتبتها فه اینه ظاهر تحقق الغیبه به حکایت امور ظاهره لیکن نهو زعیف و سنه اصلا این روال از طبق ما نیامده کلن و اصلا احتمال دادیم که روالت داود عبدالرحمن سیابه اصلا آماده برای نفی این مطلب میگه امور ظاهره مثل حدت و عجله پلیسه من رقیبه ثابت نشاندیم که مرد احتمال دادیم که اصلا روالت عبدالرحمن سیابه ناظر بی این باشه امور تکلینی که انسان داره و خدا در انسان خواهر کرده ذکر اونها اگر مخفی باشه مثلا زیر لباسش نمیبینه کسی اون خیبته ولو فعل نیست دقیقه کنید ما لازم نیست در غیبت حتما فعل باشه در تکاب حرام یا مکروب فعل نیست همون شه اما خوشش میاد کسی بدونه مثلا یه قسمت از بادن خیلی در مود داره مثلا با مثال مخواهم بگر اما زیر و پیراهن اما اگر همون قسمان فرصور صورتش مثلا غیر طبیعی مونده گفتن این دیگه قیبت نیست. ولذا احتمالا اگر رواستم قبول بکنیم تنزیل منظر قیبت الله عادتاً وقتی انظر ظاهر بود و شاید مراد مسئول در اینجا ایزا بوده. ایزا که هست. یا مثلا شاید قیبت به این معنا که اگر میخوایی مشکل داشته جلو خودش می‌گفتی. یا مثلا قیبت بودن به لحاظ اینکه با حرکت دست و اینها به صورت استهزار قسمت این قسمت ها بوده و انصاف قصه اینطوره گفتن یک صفت ظاهری در شخص بلا فرض که به بعضی اجاد خوب نباشه مثلا صورت شریع پرموه به طبیعی این ظاهری همه مردم میبینن اگر فی نفسه باشه این ریبت نیست مگر انامین دیگه پسیبت بکنه. بله ایشان که نهانقدر اپ یکون وزه ذکر امور زاره حرا اتبااقشهستن این دوستی این بود. هر رابط در طرحق غقلقی و تو به تعریض و اشاره و به اشاره قلا کهنیبول از تعریض گوشه کنایه زدن و به در میگه دیوار بشنره. الحمدلله لم یچلنی مثلا بخون. مثلا صحبت یک آقای بشه بگه ما که الحمدلله خداوند به ما داده که دنبال این کار هم. مثلا اشاره بکن که این شخص تخت سرش اینه که در باب قیبت چون ذکر رو که اخاق این ذکر اینطور نیست که به موضوعیت داشته باشه مراد از ذکر طریقیته یعنی شما این مراد رو به طرف منتقل بکنید شما یک مرادی رو به طرف منتقل بکنید این مراد نقص هست در شخص این مراد چجوری منتقل میکنید ممکنه با دست با اشاره ممکنه با نشستن و برخواستن ممکنه با تعریض با گوش کنایه خدا را شد که من اینجور نیستن. این دقیقه اونه که در غیبت مهمه انتقال این مراده سبب انتقال ممکنه کتابت باشه بنویسید ممکنه فیلم تهیه کنید دقت کنید، اسبابش و تواشفش مهم نیستم مراد اون منکشف و مکشوفه راست این مطلبیشان درسته و به استدا من در سابقه هم عرض کردم چیزی غریبی که در قرآن هست در قرآن یک دست صفت بیان رو در انسان مثلا میکنه که انسان قدرت بیان داره الرحمن خدا انسان علم بیان این قدرت بیان این اوسع از زبانه بیان نه قدرت جدا سازی میتونه به راحتی به اشیاء جدا ایجاد وصل کنه هر چیزی رو مثلا در بازو در رو یک طرف بزاره باز به یک طرف و بعد پزایدهستون علوم درست میشه خیلی کارها همامون زدگی بشریتو اینه و در قرآن این سفرس رو به حسر ظاهر به رحمان نسبت داده شده که حالا یا مساققه با الله یا با اور بعضی ها بعد از لفظ الله در به حسر رسوه اصماء الله یا حالا اهد بردشه یا رحمان بردشه از کنم حضورتون که و اما در جایی که صحبت اسماء و علما آدم الاسماء قبلش رد که اون از هر اصماء الاده است این که لطیفه در قرآن. نس... وقتی نسبت داده شده قدرت بیان رو به صفت رحمانیت نسبت داده قدرت اسماء رو علّم آدم الاسماء که تلفظ باشه این رو به صفت ربوبیت الهی لز لز علیهاله مراد از غیبت اون قدرت بیان نه قدرت لفظی در باب غیبت به هر نحوی که ما بیان بکنیم نقش شخصی رو مراد این قسمته یا حتی اگر مثلا به نحوه کنایه باشه فرقم نمی در اینجات هم دیگه وقتم تو من رو ها من داشتیم برسیم الله و سالالله علیه و آله و